الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد, الله <تصفيق> الله <تصفيق> الله محمد و, و, و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله في الارزین اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام و اليك يعود السلام سبحان ربك رب بالعزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك اي النبي ورحمة الله و برکه. السلام على الائمه الهدين المهديين السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام على علی امیر المؤمنین السلام علی صدیقت الشهید السلام علی الحسن و الحسین، سید شباب اهل الجنه اجمعین السلام و علی ابن الحسین زین العابدین السلام و علی محمد ابن علی باقر علم النبی السلام و علی جعفر ابن محمد الصادق السلام و علی موسی ابن جعفر الکاظم السلام و علی علی ابن موسی الرضا السلام و علی محمد ابن علی الجواد السلام و علی علی ابن محمد الهادی السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجت بن الحسن القائم. اللهم أكن لوليك الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هازه ساعة و في كل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و وتمتعه حتی تسکنه و اللهم عجل لوليك الفرج و من انصاره و قال الله تعالى في کتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من دیشب امروز خیلی تو فکر بودم که امشب چیکار کنیم از طرفی دوستانی که خب از این حسینیه و دوستانی که شاید غیر از این حسینیه هم کربلا مشرف بودن امشب توی این حسینیه تشک دارن و حال و هوا حال کربلا کربلاست و نجف به خصوص که شب جمعه گذشته همین موقعها ما نجف بودیم و تو ورود به نجف هم به دوستان عرض کردم قددانی کنید که امیرالمؤمنین اجازه داد اگر شبای جمعه از علی گفتید از آن مغرب شب جمعه وارد کوفه بشید و نجرد خب امشب شاید حال هوا حال هوای دیگه ای باشه اون حرفا رو بزنیم از طرف دیگر احساس کردم این آیه هم در ارتباط با همی حرفاست بحث ما نیمه کاره مونده و فرصت هم زیغه حالا گفتم آیه رو میخونم شروع کنیم ولی قبل از شروع من یه دو مطلبی رو فشورده عرض میکنم نمیدونم به کجا کشیده میشه اگر به جایی کشیده شد که به آیه نرسیدم خب دیگه در اختیارم نیست ولی اگر شد که بنا دارم برگردم آیه رو بحث کنم اون دو سه مطلب مطلب اول به دوستانی که مشرف بودن عرض میکنم حتما اول ورود سجده شکر به جا آوردید حتما نماز شکر خوندید اگر نکردید انجام بدید برید کلی خدا رو شاکر باشید که یک همچون نعمتی به من و شما و هممون عنایت فرمودن که بتونیم به پابوسی حریم ولایت این بزرگواران در سرزمین انبیا و اولیا موفق بشیم این خیلی شکر داره این قسمت اول قسمت دوم به همه اون آقایون و خانمهایی که مشرف نشدن همونطوری که جای عرب فرمودن کرارن تو اتوبوسا ورود به سحنها و حرمها هر یک از اماکن مقدسه میگفتیم همه دوستانی که به هر نهوی در ارتباط با حسینیان چه باعث گردوندن حسینیان چه در حسینیه خدمت میکنن چه در جلسات شرکت کنند چه در کلاس هستند، ما برای همه اونها زیارت میکنیم دعا میکنیم آرزوی توفیق براشون داریم حتی این عبارت رو صحن عبی عبدالله رفقا شاهدن بلند دربی عبدالله عرض کردم دوستان ایستاده بودند گفتم هر کسی که یک بارم در این حسینی شرکت کرده اگر از دنیا رفته امیدوارم در این سحن عبی عبدالله روبروی ذریع حضرت از حضرت میخوام انایت رو شامل حالش در اون آلم بکنه اونایی که حیات دارن ولو یک بار توی این حسینی اومدن رفتن امیدوارم مشمول انایت عبی عبدالله بشن و جای دیگه اون مقداری که از دست ماها دعاگویی، کردن و آرزوی توفیقات برای اونها بوده، انجام شد و عرض ادب شد این دو. نکته سوم، برخی از دوستان فرمودن ما مطلع نشدیم چرا به ماها نگفتید، ما میخواستیم بیاییم. یکی از محظوراتی که این چارپنج پنج سال بنده مشرف نشدم همین بود. چون یکیش البته چند محظور بود، یکیش همین بود. فقط می گفتم دلمون میخوادسه جمع بریم. خب این سفر خیلی که در اختیار ما نیست حتی از اینجا ما دو تا اتوبوس هم را بیفتیم از سر مرز به اون طرف گاهی عملاً بین دو تا اتوبوس فاصله مینداازند. گاهی نمیگذارن دو تا اتوبوس با هم جمع باشن. یه اتوبوس یا و پنج شفر بله معمولا میتونن همه جا با هم باشن. خب ما همین دوتا اتوبوس هم الحمدلله خیلی وقتا با هم بودیم ولی بعضی جاها ما را از هم جدا می کردن. من می دیدم کنم لذا این سری رو حالا بعد از مدتها بر مبنای کسانی که خیلی توسینیه فرض کنید بیشتر خدماتی داشتن یا اقداماتی کرده بودند، گفتن که در بین اینها قرعه کشیمانن در واقع که این تعداد پنجات ها انتخاب شد وگرنه نه هیچ جهت خاصی نسبت برخ دیگه نبود ولی امیدواریم از حالا به بعد اگر عوی عبدالله انایت کنن امیر المؤمنین سایشون رو بر سر ماها بگسترانن و بقیه محسومی لاعقل هر چند وقتی بار یک اتوبوس یا و نفر بیشتر حیلن تصور میکنم یه مقداری مشکل باشه بخوایم همیشه با هم باشیم بتونیم به مرور بر مبنای اولویت ها سری به سری اگر خواستن مشرف بشیم انشاءالله این نکته بعدی که وقت بعضی فکر نکنن نسبت بعضی ها بی توجهی بوده یا نبوده در حال اینجوری فعلا مقدر شد که یه ده مشرف شده. مسئله بعدی نسبت به اونهایی که مشرف شدن و اونهایی که میخوان مشرف بشن من تقاضا میکنم استدعا میکنم اینو درخواست عاجزانه دارم قبل از تشرف اونایی که میخوان مشرف بشن چند جلسه با افرادی که یه مقدار اطلاعات بیشتری دارن یه مقدار احیانا در زمینه معرفت امام و ارزش زیارت و نقش زیارت و هدف زیارت و رفتن تو کجا بشینن وقت بذارن صحبت کنن به قدری انسان دلش میسوزه البته من بچم و کوچکتر از یارقم ظواهرم رو من میگم باطن رو خدا میدونه من نمیدونم ممکنه یک فرد همون عامی آمی عامی آمی آمی که روز روال ظاهری هم هیچ توجه به بعضی مسائل نداره او در پیشگاه هر یک از ائمه بیشتر پذیرفته شده باشه اون مربوط به اونهاست ولی زواهره هم شما دقت بفرمایید. انسان خدمتی کیا داره میره زیارت چیه چی کار می‌خواد بکنه من تو اتوبوس قبل از رسیدن به مرز عراق به دوستان عرض کردم گفتم شما اولین انگیزتون از زیارت تشکر و قدردانی باشه اولین قدمتون آقا مشکل دارم اومدم نباشه اولین اقدامتون گرفتاریام حل نشده شدم بیام پیش شما گرفتاریمو حل کنید نباشه اینا رو هم بخواید بعد ولی اولین قدم هرچه چه ارزش است در این عالم وجود به اذن الله کانال شما به ما رسیده ما مدیون شما در مقابل اون همه انایت شما ما چه کار کردیم حالا میخواییم بس سر و برهنه بیاییم خدمتتون اول بگیم متشکریم سپاسگزاریم شما بودید که دینو برای ما زنده کردید شما بودید راه خدا رو به ما نشون دادید اگه در زیارت ابی عبدالله میخونید اشهد انک قد اقمت الصلاه و, اغمت از, سلات و آتیت از زکات و امرتب معروف و نحیطن المنکر این مزامی نیست که اعمه هدا به ما یاد دادن در زیارت این بزرگواران مطرح کنید یک شکل از تشکر و قدردانی همینه بیایم به پابوسیتون لذا بزرگانی بودن که از دروازه کربلا پا برهنه شدن. تا چه برسه حریم بینرحلمین سر و پای برهنه می رفتن چند روزی که تو کربلا بودن ازای پختنی نمیخوردن. میوه و شربت و شیرینی نمی خوردند. خودشون فقط در حدی که فعلا گرسنه نماشن که بتونن اعمالشون انجام بدن، یه چیزکی می‌خوردن و سد جو میکردن تا بتونن انجام وظیفه کنند. چون سرزمینی‌ش که یک بزرگواران عالم وجود، بزرگواران عالم وجود برای بزرگ کسانی که میخواهند بزرگ شدن همه چیزشونو دادم من تو اتوبوس به دوستا گفتم گفتم مثلا قابل مقایسه نیست این حرفی که من میخوام بزنم ولی چاره ای ندارم در قالب تمثیل میگم اگر یک کسالت ها دیوانه داشته باشم تقریبا معیوس بشم از ادامه حیاتم یه پزشک حاذقی پیدا بشه منو مداوا کنه من تا زمانی که زنده ام میگم آقا خدا پدرشو بیامرزه هی hey, میرم آقا دست درد نکنه عجب من داشم و حالا چی نسبت به حیات دنیوی حالا بمیرم پنج سال دیگه بمیرم ده سال دیگه بمیرم این که قطعیه حالا تازه این چند سالی هم که او باعث شد من به اذن الله فعلا حیاتم باقی باشه نمیرم حالا چجور زندگی کردم بحث دیگریه حیات واقعه بشریت مدیون این بزرگوارانه نیست اینا باید با معرفت انسان مطالعه کنه هست یا نه؟ به چه قیمت حالا دقت بفرمایید اگر یک پزشک تازه پوله بذیتم بگیره تو اتاق انتظارش منتظرم بشینید باید با یه مقداری مثلا مقدمات و موخرات ولی به شما لطف کنه اینا به قیمتی که سرشونو بدن زن و بچهشونو به اسارت هم بفرستن همه امکانات دنیوی رو از دست بدن برای چی؟ برای که من شما آدم شیم. من شما رشد کنیم. با اون قیمت ایثار و پداکاری که از هرچی بخوام بگم زبان ناقصه نسبت علکنه نسبت به او شما تشکر نسبت به اینا اگه بخواید داشته باشید چیه؟ نسبت به یک پزشک ممنونم. نسبت به اونهایی که به این قیمت همه وجودشون رو دادن سر و بالای فرستادن زن و بچهشون رو به اسارت قبول کردن تا راه رشد من و شما رو به من و شما بفهمونن این یک مسئله است خب انسان نسبت به این مسئله پس اولین قدم س با این بینش انشاءالله وارد بشیم ما اومدیم بگیم از ما که چیزی بر نمیاد ولی متشکریم سپاس قدردانیم شما بودید راه خدا رو زنده کردید شما بودید راه فضیلت و باقی نگه داشتید ای کاش بودم اون زمان منم نسبت به اندازه خودم به شما در این راه خدمت میکردم ولی گرچه همونطوری که در زیارت ناحیه مقدسه امام عصر در زیارت ابی عبدالله می پرم... بیان میکنن امام عصر بیان می‌کنند جدا ابن رسول الله یا ابی عبدالله اگر چه زمانه منو به عقب انداخت و در کربلا نبودم که شما رو یاری کنم ولی حالا به جای خون گریه میکنم حالا چنین میکنم حالا چنان به من و شما یاد دادن تو زیارت بگید یا لیتنی کن تو معکم ای کاش منم با شما بودم حالا نیستم امروزم امروز کار میتونم بکنم یک تشکر قدردانی زیارت یک قدمش قدردانی و تشکره خب لازمه قدردانی و تشکر این نکته مهمه که من خیلی بچم بی اطلاع ترین و بدبخترین منم توی جمع اما اینو واقعا رنج میبردم خدا میدونه قصه میخوردم که خدایا Shiaهای ما معرفت بیشتر پیدا کنه رشد کنه با یه شناخت بهتری وارد بشن با یک توجه بالاتری وارد بشن ببینید تشکر یک چیز یعنی چی شما یک کتاب به من میدید آقا متشکرم دست شما درد نکنید. یعنی چی؟ یعنی میبوسم میدارم اون تاقچه؟ این تشکر لفظی هست تشکر عملی نیست لفظا گفتم متشکرم ولی تشکر واقعی از این کتاب قدردانم یعنی از کتاب استفاده میکنم اونی که کتاب میگه من براش ارزش قائل میشم حسین جان متشکرم که این همه زحمات کشیدی اومدم بگم تداتون بشم شما بودید که حق رو شناسندین خب شناسندن حق به چه قیمت بود؟ همین امام حسینه که فریاد میزنه الناس و عبید و دنیا و دینو و علا السنته هم یهوتونه هم در رحم آعشه هم و اضامه حسوب بلا قلت دیانو اگر من اینجوری باشم دین به اندازه معیشت دنیا برا مطرح باشه دینا تا اونجا بخوام که به زندگیم لطمه نخوره اسمم شهرتم آسایشم استراحتم و و و همه جنبه‌های دنیایی سر جاش باشه دین بله چه میاد کوچکترین مساله برای آسای نه من اینجا نیستم بعد میگم حسین جان متشکرم من دروغ میگم لفظم با عملم تطبیق نمیکنه اومدم بگم متشکرم یعنی آقا جون اینو میخوام شما کمک کنید شما دستمو بگیرید شما یقل به گردنم بندازید سرشو نگه دارید من اینو فهمیدم که اگر ارزش در آلمه شمایید و اینم فهمیدم اگه با شما باشم رستگارم اگر از شما جدا بشم غرق زرق و برق بی عرضش ولی نمیتونم ادعا کنم این زرق و برق ها منو نفری به لذا اومدم بگم شما که اینقدر بزرگید مددم کنید کمکم کنید من تو راه شما باشم با شما باشم تو مسیر شما باشم دستم بگیرید یک نگرش بر مبنای زیارت باید این باشه دو خیلی سریع و گذرا ارز کردم نمیدونم میخوام برگردم با آیه در این زمینه وقتی آدم میبینه که مثلا کنار زریح آقا امام مگه زنده با مرده داره ولی الله خلیفت الله شهید در راه خدا غیر امام غیر معصوم بلا تحسابا الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احياء عند ربهم رب يرزقون اون وقت شهیدی که امام هم بود اون مقامات اون پایین پای از ابوالفضل علیه ایستاده بودم عرض ادب میکردم یکی از دوستان روحانی قم رسید حال خوشی هم داشت تو این سفر من گاهی توجیه میکردم سوجوداض خوبی داشت رشید اومد جلو گفت فلانی اینجا واسه میخوام تو رو شاهد بگیرم من باز ثवल علیه السلام عرض کنم من ذکر فضائل شما رو میکنم همینجا میخوام یه ذکر فضیلت کنم این قضیه رو تعریف کرد که یکی از علما با یکی بحث شده بود از ثवल علیه السلام بالاترن یا جناب سلمان اون عالم گفت که شاید سلمان بالاتر باشه چون خیلی عالم بوده خیلی زحمت کشیده بوده، خیلی مثلا دنیا دیده بوده و مورد توجه ائمان بوده و پیغمبرم منّا من سلمان منّا اهل بیت هم فرموده و اینا. گفت شب خواب دید حضرت زهرا سلام الله پایین پای حضرت ابوالفضل روبروی ذری این آقا داره میگه شاهد باش ما میخوام ذکر فضیلت کنم اینجا بگم. گفت شب خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عالم توجهی نمیکنه. عالم عرض کرد بی, بی از من جسارتی سر زده من فدای شما فرمود بله به پشرم عباس توهین کردی اگر پسرم عباسی یه نظر کند همه مردم سلمان میشن این غیر امامشه تو شهدای کربلا بله ما عقیدمون اینه اینا رو اثبات هم می‌کنیم عقیده‌ام داریم غیر امام شهید کربلا ابالفضل علیه السلام فرموده یعظه زهرات طبق نقل در عالم رویا که استدلال میشه کرد اگر بخواد نظر کنه همه رو سلمان میکنن وقت امام حسین کیه امیر کیه انسانی که اومده به زیارت اینها معرفت اگر باشه دیگه سر از پانه میشناسه که کجا راش دادن که حرص بزنه اکس منو کنار زری بگیری و او پشتم بزری شد حالم چه بشه عکس داشته باشم که کنار ذریع عکس گرفتم توجهام به فیلم بردار باشه که منو چه کنا... چرا ما اینقدر ضعیفیم خودم میگم کجا رفتیم ما عرض کردم به نفعا بعضی یا تکراری باشه آقا امشب امشب توی حسینیه مثال میزنم کسی بیاد به من بگه که فردا ساعت ده صبح از امام زمان علیه السلام برای شما یک ساعت وقت گرفتم فرض کنی. این ممکن نیست نگید که حالا کسی از در دوکان ها میخواد باز کنه اگر فرض بفرمایید از کانال امام احس علیه السلام یه شخصی بیاد یقیناً صحیح فردا ده صبح برای شما از امام احس براتون وقت گرفتم شما امشب تا ده صبح فردا چه حالی دارید؟ امام احس؟ خدمت آقا برم؟ چی بپرسم؟ چی سؤال کنم؟ چه کار کنم؟ اول دست رو بوسم؟ اول پاشونو ببوسم که شما چه حالی خواهید داشت آقا همه امامان کلهم نور واحدن هم. امامم زنده و مرده نداره لحظه ورود به حرم یک امام یعنی وقتی که امام بد داده داری وارد میشی سر از پا میشناسی اگه این معرفت ففراد ایجاد کنی اون وقت سعی میکنه برای اینکه دستش به ذلی برسه یه زائر دیگر رو حل بده، پرت کنه یا یکی دیگر رو اذیت کنه یا با یکی دیگه تندی کنه یا احیانا برای ب... اینا نیاز به کار داره من به رفقا گفتم احساس وظیفه کردم بریم خدمت برخی از مراجع بگم شما رو به خدا وادار کنید یه رو تو مجالس بیشتر حرفا رو بزنن بگیم بعضی‌ها رو کتاب در این زمینه بیشتر بنویسن به مسئولین سازمان زیارت بگیم از آقایون روحانیون کاروان‌ها بخوان این مسائل رو بیشتر برای مردم بگن آقا به دوستا کردم هر کدومتون مقتی که دارید مشرف میشید این فکر رو بکنید. با اینکه که آرزو میکنید هر ساله بیایید سالی چند بار بیایید مشرف بشید. اما هر کدوم این فکر رو بکنید. فکر کنید اولین بارتون مشرف شدید و دیگه تا آخر اوم توفیق پیدا نمیکنید. چه حالی خواهید داشتید؟ محضر یک همچه بزرگوارانی که به یکی نظر مثل وجود رو کیمیا میکنند. همه چیز عالم در دریگر قدرت اوناس وزیر و رو خواهند کرد شما میخوایی خدمت اینا برسی قبل از هر چیچی بخوای منو عوض کنید من آدم شم من بتونم تو راه شما باشم. من بتونم شما رو بیشتر بفهمم من ب... از خودشون خودشونو بطلبیم طلبیم وقت این آدابی داره این حالاتی داره این شرایطی داره اینا نیاز به توجه خیلی بیشتر داره برخی بزرگان مقید بودند که اگر زیارت میرند آیا مورد انایت قرار گرفتن یا نه اینو جواب بگیرن برگردند آروم نمیشودند و می گرفتن هم جواب و عناوین مختلف به صور مختلف به جواب میگرفتن که آیا ما را قبول کردید نه واقعا ما به ما میگید راه ما رو را تایید میکنید دست ما رو میگیرید که چیکار بکنیم چیکار نکنیم این بینش اگر ایجاد بشه شما ببینید الان توی وادی ارزشی نصف علم حالا علومم فرق داره به خصوص در وادی علم معنوی و تکامل اخلاقی و درجات عالیه غرب این چقدر برای کسانی که یه مقدار این ارزشها ها رو میفهمن چقدر آتش و وله این مسائل رو داره؟ حالا اگر عالمی که توان تربیت این مسائل رو داشته باشه شما چقدر قرض این عالم رو میشناسید چجوری در شو میبوسید و در محضرش زانو میزنید چجوری عزناله میکنید التماس میکنید شما را به خدا منو از خودت اگه جلسات خصوصی داری منو جز اون شاگردهای جلسات خصوصی هم جات بزن اگه میخوای یه چیزایی بگی منو جز اون عده قرار بده منم این رو بشنوم حالا امام است زنده و مرده که نداره علمش از امام صادق علیه السلام قبلا براتون خوندم این رو وقتی که آصف ابن برخیا آصف ابن برخیا علم منل کتاب از کتاب یه چیزکی داشت انا آتیکه من برات تخت بلغیس رو حاضر میکنم ملکه سبا رو قبل ان یرفد قبل از این بخوای بخوایی چشمتو با هم بزنی برات حاضر میکنم او وقت راجب اعمه چی میگه اول لاه شهیدن بینی و بینکم و من اندهو المل کتاب امام صادق فرمود اگر این آیه رو توجه کردید به این آیم توجهی فرموشم ام صادقه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین علم کتاب پس رتب و نیست که علمش پیش اینا نباشه همه چیز عالم رو میدونن همه چیز هستی رو فقط خدا نیستن فقط خدا نیستن اون یه وقت دیگریه منهای خدا بودن هر چی بگید کم گفتید مردن یعنی چی مردم؟ آقا یک مؤمن شما تو همین معراج سعاده آخر معراج سعاده آداب زیارت رکید یک کتاب بخونید از اول که آخرش بخونید آخر معراج ساده فکر کنم سه صفحه یا چهار دفعه راجع به آداب زیارت مرحوم الله احمد نراقی روایت از پیامبر معرو میکنه تو معراج ساده که وقتی یک مؤمن دفن میشه به ای که روح اون مؤمن رشد داره احاطه بر زائرین قبرش داره. پدر شما از دنیا رفته مؤمنی بوده. روحش چقدر آزاده به اندازه ای که شما میری کنار قبرش فاطره میخونی تلا می میکنی از راه دور براش خیرات و مبرات میفرستی او هاته داره حالا روح امام که علم کتاب پیششه لارتون ولا یابس هم در کتاب، از این گذشته حالا دومی شده قد کنید. معلمین غیر از معصومین علیهم السلام و غیر از اونهایی که خودشون به اون دستگاه بستند که قدرت تحول در تکوین و اعمال ولایت تکوینی دارن منهای اینا بقیه معلمین تمام توانشون اونچه بلدن به شما یاد بدن به اندازه استعدادی که شما دارید بیشتر از این میتونم یک شما استعداد نداشته باشید او هر چه عالم باشه میگه نمیتونه. شما قابلیت ندارید استعداد ندارید من اون چه بلدن به شما نمیتونم بدم دو شما استعداد دارید توان او محدوده. من بیشتر از این من امامان از این دودید هر دودید با بقیه فرق دارن یک قابلیت شما را اگه بخواید بالا میبرن این مهمه قابلیت نداره میره میچسبه آقا میخوام منو عوض کنید شما فقط مثل مربیای معمولی نیستی که من به اندازهی که توان دارم به من یاد بدی خیلی خوب حالا باشو برو شما مثل وجود و کیمیا میکنید شما دگرگون میکنید شما ظرفیت رو بالا میبرید لذا زیارت کلاس تربیته برای ظرفیت بالاتر بالا کردن دو شما ظرفیت که بالا ببرید چون علم خودتون حد نداره ظرفیت طرف هم بخواید بالا ببرید بیه حد میتونید ظرفیت رو بالا ببرید بخوان در محضر این بزرگ با, با این امکانات تو مرحله اول خونم کوچیک خونه بزرگتر میخوام عب نداره بخوان ولی اینا اول نمیشه بالا آن رو خواست ما را آدم کنید ظرفیت بدید چشم برزخی ما رو باز کنید بعضی ها تو حرم تا به ما نشون ندید ما نمیریم. میخویم یه چیزی به ما بفهمونی ببینیم حالیمون شد یک کمی چشم ما باز شد یه چیزی نشون دادید قبولمون کردید یا نه چه بگید پس چه بکنم پیش تی برم چه کار کنم این معرفت رو در مرحله اول معرفت معرفت معرفت معرفت بگید به دیگرانی که میخوان مشرف بشن این رو برن با افراد بشینن کتاب بخونن، مطالعه بکنن، توجهی به اینکه کجا دارن میرن، چه سرزمینی دارن وارد میشن در البته اینا از دور هم شما بخوای از همینجا مرز ادب کنید اونا، اما گاهی انسان احساس می‌کنه می‌خواد نشون بده خب من میتونم یه کمی مشکلاتو تحمل کنم، حرکت کنم، بیام از جلو خب حرکت می‌کنه، میره، از نزدیک هم ارزه ادب می‌کنه بنا به توجهی هم که به اون مکان خاص شده، لذا این معرفت پیدا بشه که کجا میخوان برن وقتی معرفت پیدا شد به اقتضای اون معرفت چگونه رفتن مطرح میشه چگونه رفتن همینطوری که یه وقت هست ما دوتا دوستیم همسن سال و همصد دوتا دوست همسن سال و همصدمون هم از اون طرف دارن میان حالا داریم میبینیم از دور سلام علیکم چوری حالتون خوبه بله بیا خیلی خودمونی این طبیعیه اما دوتا تا دوستیم همصد تقلید ما داره روبروی ما میاد چجوری برخورد میکنی؟ مثلا قابل مقایسه نیست اشتباه نشه عالم ربانی معلم روحانی راهنمای مرشد طریق کمال شما داره رو میاد شما چجوری برخورد میکنید؟ در مقابل امام علیه السلام چه از دور چه از نزدیک در مقابل کیست دادی؟ مرحوم عجمی زلی آقای شیرازی رحمت الله علیه که از کم روزگار بوده همسفری ایشون که سفر قبل ما با اون بنده خدا هم سفر بودیم خدایش رحمت کنه به رحمت خدا رفت او اون مرحوم میگفت من با حجمیزدلی آقا سفر کربلا بودم چل سال قبل چل پنج سال قبل از ورود به کربلا دگرگون بود تا خروج از کربلا و روز نبود که چند نوبت روزه یعوی عبدالله رو تو کربلا نخونه و اگر گاهی بزرگترها مشغول بودند، بچه ها رو دوره خودش جمع میکرد با اینا میشست میگفت میخوام از کربلا بگم اینا الان چه آدمایی بودند بودن؟ تو ستوهی که معلوم و همین مرحوم میگو من مرحوم عجمیزلی آقا رو دیدم به در حسینیه اسفحانی ها چون آقا ساکن اصفهان بود چی دادی رو ساکن اصفهان؟ به در حسینیه اسفحانی های کربلا چسبیده بود حاجت میخواست تو کربلا این مرحوم گفت خودم بهش گفتم حاجه ها. کربلایی به در حسینی یه اسفحانی چسبیدی اونجا حرمه فرمود این حاجتی که من میخوام خیلی کچکتر از اینه که بخوام برم از امام حسین بخوام اینو در حسینیه میتونه بده از امام حسین بزرگ رو میخوام چی اگر از نظر فقهی حساب کنیم مجتهد بود از نظر عقلی حساب کنید عالم به معقولات زمان خودش بود در سطح بالا از نظر توجه به حدیث و تفسیر حساب کنیم جز کم نظیرهای اصر خودش بود از نظر ادبیات حساب کنیم از ادبای معروف عصر خودش بود یه آدم بی سواد نبود شاگردایی کو تربیت کرد الان چهرهای علمی سطح بالای این مملکت بعضی رفتن بعضی ها میگه من از او اسفحانی هایی که حالا نه منظورم اسفحانیت موجود داره حسینیهی که مثلا به نام مام حسین تو کربلا هست از اون آقا این حریم حریم افاظه ای انایت پروردگار بر عالم وجود است گر گدا کاهل و تقصیر تخصیر صاحب خانه چی. ما رو از این معارف دور داشتن ما رو از این ارزش ها جدا کردن ما رو از توجه به این و ما رو در این حدی در طول تاریخ بر مبنای عوامل مختلف نگه داشتن حالا رفتیم بله دستمون به ذری رسید ذریرا بوسیدیم توافم کردیم بعضی چیزام خواستیم اومدیم من جسارت به این ظاهر امام حسین نمی کنم گرچه کف پای همه اینها رو توتیای چشما می‌کنم ولی به نظر میرسه بهتر از اینا میشه شود اگر میشه شد نشیم حیفه لذا کار کنیم به بقیه بشناسونیم ما شیعه ما تو مکتب معارف بیت میخواییم بزرگ شیم با معرفت با توجه بیشتر با دقت بیشتر بگیریم برخی ورود و خروج و حرکت و سیر فرشتگان را در اماکن مقدسه میدیدند و برخوردار میشدن لذا این قسمت اول نسبت به کسانی که میخوان مشرف بشن تقاضا دارم اونایی هم که مشرف شدن منتقل کنند از دیگران بخوان که در این مسائل توجه بیشتر بشه و گاهی مثلا دیده شده البته احساسات و عواطف ارزش داره به خصوص در رابطه با حریم حسینی و عبل فضل و علیه مسلام همه شهدا و نجب سامر را سرداب کازمین همه درست اما گاهی دیده شده احساسات و عواطف بر معرفت و ادراک غلوه میکنه اینم بده مثلا طرف رسیده تو حرم امام حسین علیه السلام الان چنان هیجان احساسات و اون وقت گلوش گرفته شیون میزنه گریه میکنه بسیار خوب ولی آیا به اندازهی که یه مقدار تخلیه شد عرض ادب، نماز، قرآن، زیارت، توجه، خواستن تصور میکنه که دو ساعت وقت داره تو عرب اماموسی این دو ساعت بشینه فقط مثلا چند به شعر بخونه و به سینش بزنه بیاد بیرون تموم شد من متهمم که زیاد روزه میخونم فکر نکنید مخالف روزم یا مخالف سینم شما میدونید این آن جای خودش بسیار عالی ولی کلاس درس بچسبی یا آبی عبدالله تو سرمم میزنم خودم هم دارم منفجر میشم جیغ میکشم اگه نمیدارم بغت گلو میگیر خودم رو میکنم اما در کنارش میگم آقا آدم هم کنی چوجوری بشم شما دوست این سلیقه شخصی منه اینجوری باشم ولی از کجا معلوم این سلیقه شخصی من ایدعال باشه شما چجوری دوست دارید منو قرار بدید اونجوری بشم به رفقا یکی کهی اونجا توجه پیدا کردیم اونایی که مشرف شدن تو ذهن بیارم، اونایی هم که مشرف نشدن اینشالله به زودی برم خیمگاه بلنده تل زینبیه تو رسمتهای بلندیه گودال قتلگاه پایینه که معرکه جنگ این فضای سحنه عبدالله کمی بیشتر حرم اول فضل عباس نزدیکی الغمه دشمن اون بوده اینا این قسمت رو گرفته بودن که تو قسمت مرتفع باشن دسترسی با آب راحتی نداشته باشن آبم هم این بره این نیم دایره این فضا رو در نظر بگیرید محاصر است دست راست اقل پس که اول جدا شده نزدیکتر به علقم است. اونایی که مشرف شدن تو ذهنشون بیارم میاد این طرف تر شد صد متری هست به طرف حرم نزدیک میشه دست چپ افتاده اونجایی که مشک روبروی در ورودی باب قبله حرم از سب الان ساختم جایی که مشک افتاده از طرف الغمه به طرف خیام عوی عبدالله تقریبا از دست از الغمه تا دست اول از دست اول جدا شده تا دست دوم از دست دوم جدا شده تا جایی که مشک افتاده این مسیر خد به سمت خیام عوی عبدالله چند متر راهه بعضیش رو با یه دست، بعضیش رو با بید دوتا دست چرا امر امامش را اجرا کند که پرمود اگه میتونی آب بیار به خیام برسون ولی اونجایی که مشک افتاده بدن فه اینجا مشک اینجاست اینجوری اومده دستا افتاده رسید اینجا اما وقتی که بدن اینجا درخش شده دیگه به سمت خیام نیست این بریه حدث دو دلیل شاید یه دلیل اینه که وقتی مشک افتاد تیر به چشم خورده. اون موقع دیگه چشم ولی یه دلیل دیگر اون قدرت اول اولفد من نمیتونم وزیف همون نسبت به امامم انجام بدم عقب گرد میکنم رضا وقتی امام حسینم میاد بالا سرش میگه آقا من همینجا نه من نبرجلو مقام اولفد علیه السلام مطیع امر امام احساسات نیست معرفت سلام علیه که ایوه حل مچی عل الله و رسول و علی امیرالمومن الحسن مچی امر امامش امام گفته آب بخور امام گفته بجنگ کش امام گفته ن جنگ کش امام همه جا ولی یه جا به امام میگه آقا اینجا من یه خواهشی دارم منو نور خیلی منو همینجا بذار بذار در طول تاریخ بمونه دیدید دوتا تا مناره های امام حسین طلاس گنبد امام حسینم طلاس گنبد اول هم طلاس دو تا مناره های اول تا اون پایینش کاشی بالاش طلاس تو اتوبوس رو قوا گفتم خوندم حالا گفتن اون معمارانی که مشغول طلاکاری بودن مناره از طول داشتن تلا می کردن هرچی تلا می کردن برمی گشت بند نمی شود. تعجب کردن چیه شبیه اون مسئول خواب دید از فضلو. گفت دست بردار سرق من و حسین بذارید معلوم باشه بین ما دوتا باید تفاوتی باقی باشه همه ببینید معرفت طول فضل سلام چه میکنه نسبت به حریم امام و مقام امامت و مطیق بودن در مقابلش باز در حالات یکی از بزرگان از اولیاء دین نوشتن از اوتاد روزگار پیاده می کربلا نرسیده به کربلا تو بیابونها حالم بد شد گم شدم قطعش بر من غلبه کرد به حالت غشق افتادم یه وقتی دیدم که تو سحن عبی عبدالله نشینی که منو آوردم اما این ساعت که تک تک صدا می داد، دیدم هر تکه تک صداش گوش دادم داره میگه عل آتش گوشش باز شده بود گفت بعد دیدم که با این ساعت زنگ میزنه ساعت از اول میزنه صدا میده اینجا من هر چی گوش دادم دیدم فقط عل آتش اونور گوش دادم دیدم لبیک لبی لبی. یعنی الان اگر خدا کنه گوش دل ما رو با کنه بین الحرمین واسی یه نگاه به این ور کنید میبینید هنوز ما موسیقی میگه حلم ناصر نیم و بعد یه نگاه به این ور کنید میگه گوشتون میگه لبه یا سیدی و یا مولای چشمتون اگر بخواد نظاره کنیم حریم حریم قرب الهی برای حرکت انسانها به سوی های بالاست لذا بخواییم در این زیارت ها اونایی که نرفسن ارز کردم کلاس ببینید برید, برید برید با دیگران اونایی که رفتن بگن به دیگران و از دیگران بخوایم در این زمینه کتاب بنویسن توضیح بدن بحث کنند، روشن کنن این فرصت عظیم کسر معرفت از چونین معلمان عالم بشریت برای تحول معلوم بشه اما یه بحث دیگه دارم با اونایی که برگشتن که دوستانی که الان در خدمت شویم، چه هر کسی که حالا کربلا میره میاد ممکن این نوا رو هم بعضا بشنون می کنم میکنم کسی که رفته کربلا برگشته سنگین سنگینترا کربلا از حج کمتر نیست چی بالاتره مگر پیغمبر نفرمود سواب نود حج و عمره مقبوله داره مگه نفرمود اگه بخوام ادامه بدم بازم میگم ولی اینجا فعلا متوقف شدم همونجوری که تو سفر مکه داریم ما کربلا برای چی رفتیم ما نجف برای چی رفتیم ما این اماکن مذهبی رو برای چی رفتیم زیارت کردیم یک همونطوری که ارز کردم ما رفتیم بگیم متشکرم در شما درد نکنه شما بودید که راه خدا رو زنده کردید لازمه تشکر عامل شدنه ببینید اماما از شما چی میخوان امام حسین چی میخواد نکنه دوباره دل زینب کبرا رو به درد بیاریم خواهر اول از شما شروع میکنم شب یازدهم اینجا من گفتم به زحمت هم گفتم از رو کتاب خوندم مم. وقتی زینب کبرا خیمه ها آتش گرفته بود سر صدا گشت که بچه ها رو پیدا کنه یکی از بچه های عبدالله رو کنار بوته خاری پیدا کرد تا چشمش به عمه افتاد گفت عمه جان چیزی داری سرمو بپوشونم اینا پوشش منو بردن که عمه فرموده باشه هم مثل تو من نمیفهمم حالا این اینا به حجاب اینا به نماز اینا به دیانت اینا به حق و ناس اینا به غیبت اینا به دروغ اینا به مال مردم خوردن اینا به انجام وظیفه نکردن اینا رسالت خود رو نشناختن و چکار کردن اینا خود رو فدای حق کردن من چقدر خود فدای حقم حق فدا بشه من جلبه پیدا کنم حق فدا بشه دار و دسته من اسم را از پیدا کنم حق و یدک بکشم خودم و به رخ مردم بکشم من ظاهر مام حسینم صد بار برن کربلا و بیام اونی که مام حسین از ما میخواد اگه ظاهر کربلایی شما رو به جان زینب کبرا سلام الله علیه شما رو به مقام اول فضل لباس ایناری که مشرف شدن تصمیم بگیری یک حرکت دینی بهتر حرکت معرفتی قویتر وقتتون رو یه مقدار اختصاص بدید برای خدا و دین و مذهب و راه اونا همه چیزشون رو دادن برای دین ما یه مقدار از آسایش و زندگی و وقت و اینامونو بدیم برای دینمون بدیم نه برای خودمون نه اینکه دینو دین و بهانه قرار بدیم همون درد عبی عبدالله یحوتونه هما درد در معاعش هم و اذا محسوب البلاغ قلت دیانو. من به او بد بین، او به من بد بین، من به بد بگم اون به من بد بگه این فکر کنه که با اون رقیب او فکر کنه با این رقیب این میگه اونو از صحنه به در این یکی میگه چه خبره تو مذهبی ها تو متدینی تو همینایی که کما این که مثلا فرض کنی این خودش یه نمونه آقا رو سنگ قرمز بالا سر زری عبد لانم نماز خوندن چقدر ارزش داره خیلی خوب آقا بقیه هم که تو نوبت واسه نماز میخونه شیعه یا نه شما نخون به خاطر شیعه ی اوی عبدالله بگو فزگی شیعه دیگه جلو بیفته امام حسین نمیده بذه هول میده پرچ میکنه طرف رو خودش بخونه بنده این سفر رو سنگ نماز نخوندم خاطر میگم دیدم داره مردم عذیت میشن گفتم حسین جان تو میدونی من عاشقم رو این سنگ واسم ولی نمیشه چاش میدم تا هرچه دورتر امکان داره وای میشم تو میتونی عنایت کنی. خدای تو هم میتونه عنایت کنه. نه، فقط اونجا عنایت میکنه. من به خاطر شیایی تو میام کنار، بذار شیای تو بدن. اونم شیای تو. ما یهودی نیست که اونجا که در نوبت میگیره نماز بخونه. به گوشم وای، فوش شنیدم برای اینکه رون سنگ نماز بخونن. به گوشم فوش شنیدم. مثلا معذرت میخوام بذار برو گم شو من میخوام اینجا نماز بخونم. وای، چی میگیم ما؟ به هیچ هم نگفتم الان میگن بابا یک مقدار شما را به خدا که از کربلا برگشتی توجه پیدا کنید شما رفتید جایگاه درخشش آلی عالی ترین سار عالم وجود شما نجف رفتید نمیتونم ارزاید طاحت جلوگریه بزرگترین عبد الاهی بعد از پیغمبر در عالم وجود مظهر نمایش و جلوه عبد خدا شدن یعنی چی اگر روبروی ذریع عزت تو ایون واسی تو ذهنتم بیاری ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر وقت میتونی رو واسی؟ اونجا ربهو فیه تجلا و زهر او هم که حیات و مماک نداره زنده است الان اگر دقت کنید او داره مگر جناب شیخ مفید با سید رزی شید مرتضا نیومدن کنار زریح امیر المؤمنی آقا جواب میخوایم. جواب داد بشون کاغذ نوشتن گذاشتن تو زریح جواب میخواییم کاغذ در رو روش نوشته شد الحق ولدی و شیخ همش جواب میگیره مگر مقدس سردبی مگر سید بحر العلوم نمیگه یکی از دوستان الاینده دانش افصن پرسید این محراب بود تو مسجد سهله واس کردم اینجا بوده که نقو شده مگر سید بحر العلوم نمیگه مشکلی برام پیش اومد علمی سید بحر اون عظمت مشکل علمی برام پیش اومد صبر کردم شب که حرم امیرالمومنین کسی نیست میخوان درو ببندن یهو شکی پاورچین پاورچین اومدم در روا کردم منتهی یکی تعریبش می‌کرده اون عوتب کرده الان شاگرد میگه شاگردم میگه دیدم سید داره به طرف حرم میره تعریبش کردم گفتم این خبرویه میدونستم که این چجوریه سید متوجه نشود گفت دیدم وارد حرم شد در بسته شد من امکان ورود پیدا نکردم سید وارد شد بعد از لحظاتی سید از در حرم اومد بیرون من تعریبش کردم دیدم رفت به طرف مسجد سهله دیدی چقدره دیدم سید رفت ولی در مسجد سهل ایستاد میخوبه میخوب مثل اینکه ما فشورده منم ایستادم دیدم هر چند لحظه یگام برمی داره بعد وای میسه یگام برمی داره بعد من دیگه قدرت ورود به مسجد پیدا نکردم لحظاتی بعد سید از مسجد سهل در اومد در اومد رفتم که این نجم صادق رو بخونید مرحوم مدرس نوری هم قضیه رو نقل می‌کنه جای دیگه اومده رفتم جلو سید گرفتم آقا سلام علیکم شما اینجا چکار می‌کنید آقا از خرم دنبالتونم بگید چی بود قاجوم برو سید بهرالوم حساسیت داشت سر سفره قضا مهمون بیاد خوشحال میشد و اگر مهمون بیاد غذا نخوره سید متاثر بود گاهی ان می میومد بیرون کسی رو پیدا کنه بیار بشینه با هم غذا بخوریم مستحب است که مثلا افراد رو سر سفره قذاتون شریک بکنید بیش از شما به دیگران آثاری برشه گفت یه روز سر نهار رفتم خونه استاد سید سید خوشحال شد مهمون اومده سر سفره نشستم گفتم غذا نمیخورم گفت چرا گفتم تا نگی اون شب چه خبر بود نمیگم گفت منو اذیت نکنید گریه کردم دست استاد بوسیدم دامنشو گرفتم گف حالا میگم گفت مشکل علمی داشتم حل شد شب مشغول مطالعه بودم گفتم ما آقا داریم معرفت تو ببینید نجف ما مولا داریم میرم از آغا سوال میکنم. اومدم در دیدی وران باز شد رفتم تو عرض کردم آقا فرمودن که سید امام تو مسجد سهل مشغول نمازه چون امام تو برو پیش او از او سوال کن گفتم چش. اومدم در مسجد که رسیدم عظمت امام تو محراب به گونه ای منه گرفت دیدم پام می خوب شد این که تو دیدی هر لحظه یک قدم برمی داشتم هر امر امام که می شد پام یا رای یارا یه قدم برداشتن امام میفرمود بیا من یه گام برمیداشتم دیگه نمیتونستم بعد میفرمودن تا اینکه به محراب رسیدم دو تا زانوام به زانوی آقا چسبیدم لب مبارکش در گوشم آمد و فرمود گفتن چی گفت؟ اون دیگه نمیگه به هیچ کس تا حالا نگفته چی بوده انایتشون بزرگواریشون مرحمتشون دستگیریشون امیر المؤمنینی که ها علی بشر کیف بشر رب بهو فیه تجلا و زهر عظمت عالم الهی رو شما باید از اون کانال بگیرید و متوجه بشید، عظمت از اونجا جلوه کنه انسان بخواد خدمت این بزرگواران بره یک با معرفت که کجا میره دو با معرفت که چه بخواد سه با معرفت که بعد چه بکنه چگونه برود چه, چه بخواهد بعد چه بکند؟ چگونه عمل کند؟ کسی که رفته خدمت این مدلواران برگشته من گیرم، آجزم، بلد نیستم، معرفت ندارم لذا در حد بچگی خودم یه چیزایی دارم میوافتم میگم مجبورم این مثالا رو بزنم شما پیدا کنید اونایی که خوب بفهمن توضیح بدن استفاده بهتر از اونا ببریم من به اندازه بچگی خودم که میفهمم ارزم کنم شما یک معلم بر پیدا کنید تو زمینه های بسیار عالی یه وقت پس میگید آقا جون من این معلم و قبول ندارم این کلاس قبول ندارم تو این کلاس هم نمیام خوبیش. یه وقت میری تو کلاس میاد بیرون هیچ تأثیری نپذیرفتید شما وقتی رفتید تو کلاس با معلم بودید اومدید بقیه نمیگن آقا این سآل من جواب بدید میگه بلد نیستم میگه خب شما که با فلانی کلاس دارید بعد چی شو که دم از علی میزنیم تو ایون امیرالمؤمنین تو ذهن خودم به حضرت کردم آقا یه عمریس. در این میبالیم تو جلسات تو محافل تو کلاس‌ها تو جمعیت ها میگیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ما به شما می نازیم حالا که به شما می نازیم گرچه شاگرد لایقی نیستم ولی به شما نازیدم حالا اومدم خدمت شما یه کاری نمی کنی که شاگرد از محضر استاد برگرده. ای همه میگه به تو می نازم اگر کسی با مکتب ما نباشه معلوم بشه که نازیدن ما بیخود نبود اگه ما مینازیدیم حساب داشت که می نازیدیم اینا همه کاری عالم وجودن میخوان انایت بکنم. خب، حالا ما رفتیم خدمت ای استادا برگشتیم خدمت ای معلم برگشتیم بعدش اولین چیزی که برای بقیه محسوصه چیه؟ عمل ما اول عمل دیگه. یعنی ممکنه کسی با شما هیچ حرف نزنه سوال و جواب نکنه روحیه شما را از طریق گفتار شما نفهمه ولی از شکل اعمال شما میفهمه اعمال ما با قبل سفر فرق نکرده باشه خدای نکرده بدتر شده باش. نمیگه که پس زیارت ها برای چی بود برای چی رفتیم اون برگشتی دو عمل ما که انشالله با تغییر کنه معرفت ما فهم ما شناخت ما توجه ما تا داغه تصمیم بگیرید تا سرد نشده تصمیم بگیرید من وظیفه شرعی میعرفا میزنم من بچه ترم و یکی به من بگی حالا که میگم بلندتر میگم خودم بشنوم. تا داغه برید یه گوشه بشینید یکی از دوستان جوان تو توم از تبلپ دیدم حالش منقلبه اش میریزه سوزی داره. رفتم کنارش عنوان وظیفه گفتم عیز من نه حالت حال تو رو قطع کنم. نه خودم الان انقدر وقت داریم با این وقتهای زیق که بیام با تو حرف بزنم منم میخام تو حال خودم باشم ولی احساس وظیفه کردم ببی الان چه حالی داری در مقابل حرم از ازتبالفظ هفتاد سالگی تو در نظر بیار ای سفر این سفر امشب یادت بیاد حالا من زندهام یا مرده تو پیش خودت یادت بیاد بگو پنجاه سال قبل چل سال قبل کمتر بیشتر تو حرم از تبلفظر بودم اینو فهمیدم که اگر اون راهی که شما میخواید ما باشین بحچه ارزشیه. این پنجاه سال از بیست سالگی تا هفتاد سالگی تو سال از سی سالگی تا هفتاد سالگی تو جوری زندگی کن تو هفتاد سالگی که رفتی قرم از تبلفد بگی آقا ممنونم یه جوری عمل کردم اون دفعه که تو حرامتون خواستم همون جوری بود اما یه جوری زندگی نکنی اگه هفتاد سالگی اومدی بگی یا اول فر حیف شد اون سن اومدم از اون سن تا این موقع خیلی کارا بنابود بکنم نکردم خیلی کارا بنابود نکنم کردم ولی حالا دیگه چیکار میشه کرد؟ بعد از اینکه گذشت این, این تغییر در گفتار من و شما معلوم باشه در رفتار من و شما معلوم باشه و مصر باشیم من اجازه بدید رفت بدم به این آیهی که مورد نظرمونه یک دو تا روایت یک چکه یک نهد البلاغه بخونم بی حساب نیست ببینید گفتیم قرآن شریف می و ازا سعال که عبادی عنی اگر بندگان من از تو در مورد من سوال کنم فا اینی قریبون عجیب و دعوت دا ازا دعان بگو وقتی که منو میخونن من نزدیکم من جواب میدم من اجابت میکنم فقط میخوام یکی دو نکته این, آره این بحث کرا این بحث ما بحث ما بحثمون نمیشب به کشید میخوام در این رابطه اشاره کنم چرا به ما فرمودن تو دعا اصرار کنید چرا ببینید من اول حدیث شو بخونم بعد ارتباط بدم به این بحث زیارت دچسیدا از امشب تصمیم بگیرید شما همه بهتر عمل میکنید من وظیفهمو دارم انجام میدم صبح ده دقیقه یا شب ده دقیقه وقتی بعد نمازام میگید سلام علیکم یا عبا عبدالله حالا یه جور دیگه بگید حسین جان من اومدم کلاس شما برگشتم هر روز بگید حالا من روایت میخونم در رابطه با دعای خدا بعد خواست از ائمه ببینید ارتباط شوری میشه با این بحث امشب حسین جان راهات نمی میخوام با تو باشم من ادعا میکنم کنم میتونم شیطون نمیذاره هوای نفس نمیزاره. دوستان ناباب نمیذارن خود پرستی ها هوا پرستی مقام پرستی ها خیلی چیزای دیگه نمیذاره ولی اینو فهمیدم اگه با شما نباشم بیچاره حالا همون سلامی که میدی <تصفح> از سلام علیکه یا عبا عبدالله گفتی بعدش کنی. بعدش چیکار بعد همون تو سلامتون از حسین جان بلم نکنی آه. حسین جان میخوام با تو باشم آه. حسین جان میخوام تو راه شما باشم آه. حسین جان میخوام دستم رو بگیری آه. چرا؟ حالا اجازه بدید من روایت بخونم کتاب دعای کافی جلد دو صفحه 471 حدیث شماره یک من عبید الله علیه السلام قال امام صادق فرمودن الدعا كحف كما كحف المتر. دعا اجابت، اجابه کما انسحاب کحفل متر دعا پایگاه و منبع اجابت هست همونطوری که ابر پایگاه و مخزن بارات هست <تصفيق> خب عبر باید بباره پس دعا باید به اجابت برسی چرا باید دعا به اجابت نمیرسی الاز ظاهر یا حدیث شماره دو انعبی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام ما عبرز عبد و نیدحو الالله العزیز الجبار ابدی دستش به سوی خدا بلند نمی کنه الا سحیا الله عزبجل مگر اینکه که خدا حیا میکنه، کنه امام فرموده من میگم حدیثه خدا حیا میکنه، ان یرده ها سفرن این دست رو بی هیچ خالی برگردونه دقیق کنید بعدی شو. حتی یجعل فیها من فضل رحمت هیمایشا خدا هیام میکنه این دستی که اینجوری به فسوش بردن خالی برگردونه از فضل خودش رحمت خودش اون چی میخواد توش قرار میده فعیزا دعا احد و وقتی یکی از شما دعا کرد فلا یرد دیدهو حتی یم سحالا وجهه و رأسه وقتی دستو به دعا بلند کردید بعدش نکنه میتونید ویل کنید این دستو به سر صورتتون بکشید و به سرتون چرا؟ بزرگان تفسیر کردن دیدید شما مثلا بعدی وقتا دست میدید با یه بزرگ دست خودتون رو میبوسید دست میکشید به زری دستون رو میبوسید دست کشید به زری میمالید به سر صورتتون چرا؟ به خاطر دستتون یا به خاطر تماس با اون شی ارزنده با اون فرد ارزنده دستی که به طرف خدا گرفتی جای لطف خدا شده جای لطف خدا رو مرس کن توجه داشته باش امام حالا دقت کنی چرا پس اگر این حدیثه خب بعضی وقتا ما میبینیم که به اجابت نمیرسه یکیش اینی که الان میخوام بگم ارتباط به این بحث ما داره یکی تو در رواهت سریح میخونم سری صفحه 475 حدیث شماره 4 انا بی عبد الله علیه السلام امام صادق فرمودند ان الله عز وجل کرها الناس بعضهم علی بعض فلمساله خدا اکراه داره خوشش نمیاد شما یه چیزی که از ایشش از بندگان خدا میخوای هی اصرار کنی حالا یه چیزی هم میخوای به یکی بار گفتی بلکن کن خود تو چه مردم ذلیل نکن هی مسر باشه هی و با افراد کره الها پافشاری الها کردن هی hey, از دیگران خواستن اینو خدا اکراه داره و احب ظالکل نفس دوست نمی با خودش این کارو بکنید با خود خدا یعنی در پیشگاه خدا هی hey, الها بکنید هی hey, اصرار بکنید عزبجل يحب ان الله عز وجل یحب ان یسالا و یطلب ما یندهو خدا دوست داره که از او بخوایی سوال کنی بخوایی الهاب برجی. اینو این رو اینشالله میخوام توضیح بدم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله خدا اغدهیه می که تو درگاه خونه من هی بگو هی بگو اشاره قبلن کردم بعد استدلال و تری خواهم کرد با این اصرار ورزیدن در درخانه خدا ارتباطت با خدا بیشتر هر چه ارتباطت با خدا بیشتر شد قربت بیشتر میشه. هر چه قرب بیشتر شد معنویتت بیشتر میشه. هر چه معنویت بیشتر شد کمالت عالیتره. هرچه چه کمالت عالیتر بود آثار کمال از شما بیشتر تراوش میکنه. لذا میگه بیا اینجا سر بسا هی بگو، هی بخو. خب زیارت نسبت به امام، پافشاری در حریم امام، التماس در پیشگاه امام، مگه مذهر خدا میشن همون میشه. لذا صبح سلام میدی بگو، زور سلام میدی بگو، شب سلام میدی بگو، نام علی میبری بگو، نام ائمه دیگر رو میبری بگو. این الها را حالا دقت کنید حدیث پنجش ش عليه جعفر علیه السلام، آقای امام باقر فرمودند: لا والله لا یلهو عبدٌ علی الله عزوجل تجاب استجاب الله له، بنده ای الها نمی کنه، اصرار نمی کنه. هی hey, پافشاری نمیکنه تا نگریت تفلکه حلوه فروش هی hey, باید این پاپشاری این استار رو مثال زده میگه بنده خدایی به کار بود به اددهی قضیه حلوه فروش قضیهش اینه به کار بود به اددهی طلبکار ها همه جمع شدن در خونش قاخه من هیچی ندارم به شما بدم من از چی داشتم از دستم رفته در این بین. حالا هیچ هم تو خونه نداشت اینا پذیرایی کنه یه دیالوا فروشی طبق قرمای شیرینی حلوای چیزی داره تو کوچه داد میزنه گفت خب اصلاً این صدا بزنیم <تصفح> طلبکارا که خونه نشستن یه چیزی اینا بخورن اینم جز که از طلبکارا بعد فکری برای این بکنید این بنده خدا اومد تفلکی بود الوا فروش بود گفت که اینو خریدن اما خوردن که پول منو بده با من ندارم چیزی بدم با آقا من گفتم این همه طلبکارم تو هم یکی اینا خب اون بچه بود طفلکی تحملش هم نداشت زد زیر گریه اونقدر گریه کرد که بقیه طلبکارا گفتن بابا ما که از این طلب داریم طلب یکی ما جمع کنیم بدیم این فیلن گریه نکنه بره تا بد به بقیه اون وقت میگیم البته این در رابطه با این موضوع در پیشگاه خدا اصرار برزیدن حالا طرف مثلا با یه دهندری با یک خمیازه ای با یک مثلا جشتی که خوابم و شنگ برم و محها و خشن شونه کرده و اتو کرده و سر و چنین و بعدم کنارزه یا و بدله س به ما بده حالا نداد خدا حافظ ما که رفتیم به ما دیدید.وا سید در این خونه. چرا تو کربلا میگن حتی میتونی سر صورتتون اصلاح نکنید با گرد غبار برید. همه گفتم به رفقا همه اماکن زیارتی داره اول به غص زیارت کنید لباس مرتب بفروشی ختونو مثر کنید برید کربلا داره با و گرد غبار را برید اولین زائر ابی عبدالله زینب کبراه بود چجوری زیارتش کرد اجازه بدید وحثم دیگه بمونه من همین جا ی عرض ادوی بکنم بقیه بحثا رو بذاریم برای بعد ان اولین زائر ابی عبدالله علیه السلام خود زینب کبراست در دو سه حالت یک وقتی که رو تل زینبیه صحنه رو مجسم کنی رو تل زینبی ایستاده داره نگاه میکنه یکی سنگ میزنه یکی چوب میپرونه یکی نیزه میزنه یکی چه میکنه که میدانید حضرت میخواد نزدیک بشه به گودال غزدگاه فریاد میزنه نمیدونم نمیدونم آیا دست دراز کرده دامن شمرم بگیره بکشه یا نه اینو نمیدونم ولی اینو گفتن ما حرم تا قتلگه رو در نظر بگیرید کجا تا کجاست از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسید دست و پا میزد ولی زینب یه رسالتی داره رسالتش یادش نمیره. بچه ها تو خیام بی, خیام بی سربنا دشمنا دارن به طرف خیام میرن زینب یه دلش تو گودال قتلگاه پیش حسینه اما رسالتش براش بندوان انجام وظیفه بر دلش غلبه داره رفت بچه ها رو از زیر بوته ها بیاره خیمه ها رو آتش گرفتر رو خاموش کنه را... اما من تصور میکنم نیمه های شب زینب اومده به زیارت حسی همون وقتی که مخواست نماز شب بخونه. اما چجوری اومد با قد خمیده با بدن گردآلود. شاید با دامن سوخته اومده کنار گودال قتلگاه اما اونی اینا رو که گفتم من گمان میکنم. اما اونی که مسلمه چیه عصر یازده همه حالا این زیارت رو ببینیم عنی اومدن زن و بچه اصیر رو به سمت کوف حرکت بده. زینب سلام الله علیه ها به کنار قتلگاه که رسید بچه ها از کنار قتلگاه عبور دادند که اینا بیشتر رنج ببرن داره که همه خودشون از ها به پایین انداختن هر کسی بدنی رو در آغوش گرفته. و داره اونجا نوه سرایی میکنه راوی میگه یادم نمیره زینب رو دیدم که همینجور داره این برانور بر نگاه میکنه گلی گم کرده هم میجویم او را هر گل میرسم میگویم او را میگند که از زیر شمشیر شکسته ها و خنجر شکسته ها و سنگ ها صدای ابی عبدالله به گوش زینب اومد گل گم گشته از خواهر منم من. اگر نمیدونم، میگن اگر امام حسین صدا میزد، شاید زینب پیدا نمی کرد یه وقت زینب صدای آشنا به گوشش آمد یا نه بهتر بگم اون عشق زینب بوی حسین رو به مشامش رسوم یه وقت دیدن کنار قتلگاه داره شمشیرشی شکسته رو کنار میزنه. اونجا به زیارت امام حسین آمده اول کاری که کرد دست بودیده بدن عبی عبدالله این بدن عبی سر رو به سوی آسمان عرکت داد و دستاران به طرف آسمان خدایا این قربانی رو از ما قبول کن دختر خرسال عبی عبدالله ظاهرم سکینه باشه میگه دیدم عمه تو گودال قتلگاه داره زمزمه میکنه اومد عمه جان این نعشه کیه که داری با حرف میزنی؟ گفت حق داری نشناسی بدن و یا به سر میشناسن که سر نداره یا لباس به لباس میشناسن که لباس تو تنش نداشتن گفت دخترم این سر تن باباد حسینه میگه به خدا من لبامو گذاشتم جای بریده گلوی بریده پدرم دیدم از گلوی بریده پدرم این صدا خارج شد شیعتی مهمه اون از بما انفذ او سمعتم به غریب او شهید فندبونی اما این دائره حالا اومدن کمکشون کردن تسلی دادن این بغلشون رو گرفتن اشکشون رو پاک کردن با تازیانه به زینب کبران صلى الله عليك يا مولا يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك ايش راح عليك مني السلام الله أبداً ما بغي و بغي الليل و لا جاله الله اخره لي لزيارتكم السلام عليكم والا اولاد الوسن <تصفيق> <تصفيق> حسین تو ایوانش میاده همه شما تنهایی زمزمه کردم و آرام گفتم من از کودکی آشکار بودم قبول من نمی‌ام گرچه او بودم. مبادا برانی مرا از دره به پهلوی بشگذده مادر. به هنگام تیری مرا من که سرفته تو کرده جوان یکی. الله هم بسم کلم عظیم لازم. العزاله جاله لاکره به صاحب الزمان یا الله <تصفيق> يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دين وقتنا یا غازی الاجاب و یا کافی المهمات اینکه مجیب و دعبات اینکه علا کل شیعن غبیر یا رحم الراحمین یا ستار الایوب یا غفار از زنوب یا مالک یوم الدین یا من يحول بین المرء و غلب یا من علی يقرب من عبل الوتین یا مدبر و دبر یا مکمل و کمل یا مسبب سبب یا مفرج و فرش یا مفتح و فتح یا الرحمین، یارحم الرحمین، یارحم الرحمین، یازل جلال و ولکرام، یازل جلال و ولکرام، یازل جلال و ولکرام، نجات من کی یارحم الرحمین، من یازل جلال و به حق بسم الله الرحمن الرحیم نجنی و خلشنی یا رحمت را حمین الهی یا حمید و به حق محمد یا آلی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن و تسعت المعصومین من ذریت الحسن خدا خدا امر فرج امام زمان امضا بفرما با فرج حضرت همه ها و مسلمین و شیعان بالاقل شیعان دردمند عراق رو از مشکلات گرفداری نجات مرحمت بفرما خدا یا عوامل تضعیف مکتب تاشان و عوامل تضعیف مبدت شیعیان بر طرف بفرما. خدایا معرفت به خودت و دین خودت و کتاب خودت و اولیای خودت رو به ما مرحمت بفرما. خدایا زیارت همه این دوستان و همه شیعان و من آسی را به لطف خودت از زیارات مقبوله قرار بده خدایا نتیجه و سمرش رو به ما بفهمان همه دوستانی که آرزو دارن به سرعت و هر چه زودتر توفیق زیارت با معرفت شامل حالشون بفرماد خدا یا جوونهای ما رو در پناه امام زمان موفق و معید و منصور و عالم و متدین و پاک قرار بده خدا یا که میخوان ما را از مسیر علی و آل علی دور کنن اگر قابل هدایت نیستن ریشکنشون بفرما خدا یا تا دم مرگ ما و نسل ما این علی علی رو از ما مگیر. خدایا اموات و زبی حقوق من ببخش و بیامرز خدایا اونهایی که در این حسینیه بودند و در میان ما نیستند از سای مورد انایت علی و زهرا علیه ما سلام قرار بده خدایا ما را در مسیر خدمت به دین دیاری بفرما اوامل تفرغه را از میان ما بر طرف بفرما زبان ما، قلب ما، چشم ما، گوش ما، فکر ما را در تحت کنترل ما به شکلی که مورد رضای خودت هست در بیاور، مریض هامون منظورین شفای آجل انایت بپرما به نبی و آلح